بسم الله الرحمن الرحیم در بحث عصبات هستیم عصبه گفتیم اونی هست که ارث میبرد ولی سهمیهش مشخص نیست اونایی که سهمیشون مشخص بود ذوالفروز بودند، اصحاب فروز بودند خب همیشه عصبه بعد از این که صاحب فرض عرضشو ببره عصبه عرضشو میبره در درس قبلی عصبه به نفس رو توضیح دادیم چون گفتیم عصبه به نفس عصبه به غیر عصبه معغیر بر سنو بود عصبه به نفس هر مذکری بود که در وصل شدنش با میت مونسی واسط نبود مثل پسر میت پسر پسرش پسر, پسر پسر پسرش که خودش گفت چهار گروه بودن جز میت یعنی فرزندان میت و فرزندانش اصل میت، پدرش و والاتر، جزء ابیه یعنی جزء پدر که همون برادران میت باشند و جزء پدر بزرگ کهمون همون اموها و فرزندانش باشند اینا عصبه بنفسورند. درس امروز ما عصبه به غیر هست، احوال العصبتی به و و معغیره، احوال عصبه به غیر و عصبه معغیر و اما العصبتو بغیره فاربعون من النسوتی اما اسبه بغير چهار گروه از زنان هستند یا چهار سنف از زنان هستند بس و اما العصبتو بغیره اما اسبه بغير فاربعون من النسوه چهار تا می باشند از زنانند همشون من النسوتی یعنی در این عصبه بغیر مردی وجود مدارد این زنان چی کدوم گروه هستند که عصبه بغیر هستن و هن اللاتی فردهن نصف و ثلوفان اون زنانی هستند که فرضشون یک دوم دو و دو سیوم هست فرضشون یک دوم دو و دو سیوم هست کدوم زنان زمانی که عصبه نبودند صحبشون یک دوم یا دو سوم هست اینا عصب به میشن زمانی که برادری داشته باشند و اونهایی که یک دوم میبردند یا دو سوم خودش میگه 4 تا هستند یک دختر دختر اگر یک نفر می بود یک دوم میبرد اگر دو تا دختر می داشت خب دو می میبرند پس همین دختر عتبه بغیر میشه چه زمان زمان که برادری داشته باشه اگر شخصی فوت کرد یک پسر داشت و یک دختر دیگه اینجا دختر عتبه بغیر میشه که پسر دو برابر اون ارث میبره دیگه اینجا سهمی خواهر یک دوم نمیشه بلکه از طریق عتبه ارث میبره این یک خودش گفته بود چار تا حسن به غیر. دو دختر پسر شخصی فوت کرده پسری داشته اون پسر هم فوت کرده الان دختر اون پسر هست خب اگر دختر تنها باشه که از راه فرض ارس میبره از راه سهمیه ولی اگر برادری داشته باشه به غیر میشه این شد دوتا سه خواهر شقیقه میت شخصی فوت کرده یک خواهر داره شقیقه و یک برادر شقیقه اینجا خواهر عصبه به غیر میشه چهار خواهر پدری شخصی فوت کرده و یک خواهر پدری داره با یک برادر پدری اینجا خواهر پدری عصبه به غیر هست پس گفته بود اما العصبت و بغیره فاربعون من النسوه اما عصبه بغیر چهار تا هستند که از زنانند و گفته بود اونای هستند که فرضشون یک دووم و دو, دو سیوم بود که این بحث رو در بحث زوی الفروز خوندیم اونای که فرضشون یک دوم دو یک دو بود یکی از اونا دختر بود یکی دیگر دختر پسر بود و یکی خوهر بود خوهر حالا چه شقیقه باشه چه پدری با شرایی که البته داشتند. یا سر نه عصبتن به اخواتهنه. اینای که نام یعنی دختر، دختر پسر، خواهر شقیقه با خواهر پدری یا سر نه می گردند عصبه، عصبه، عصبتن به اخواتهنه با برادرانشن. یعنی دختر با برادرش عصبه می گردد. دختر پسر با برادرش. خواهر شقیقه با برادرش اصبه میگردد خواهر پدری با برادرش یسر نه اصبتن به اخوت میگردن با برادرانشان ما ذکرنا في حالت هنه همانطور که در حالاتشون اینو ذکر کردیم و من لا فرض لها من الاناث و اون زنانی که سهمیه شده ای نداشتند مانند عمه خواهر پدر میت فوت کرده یک ای داره خب در اون سهمیه ها که خوندیم هیچ سهمیه ای امه براش تعیین نشده بود حالا اگر اومد شخصی فوت کرد یک عمه داشت با یک امو آیا این امه عصبه میگرده؟ نه چرا؟ چون این از طریق فرض هم ارث نمی برد که حالا از طریق عصبه ببرد پس این جمله رو داریم گیرد و بالله فر ها من ال و اون زنانی که فرضی ندارند و اخوها عصبه و برادرش عصبه است، لا تصیرو عصبتن اون زن عصبه نمی به بی اخیها با برادرش اون زنی که سهمیه ای ندارد اگر برادر عصبه ای داشت خود زن عصبه نمی کل عمی و العمه مانند امو و امه فوت کرده یک عمه داره یک امو تمام مال رو اموش می‌بره اگه کسی دیگه‌ای نداشته باشه فقط یک عمه و عمو داشته باشه دیگه عمه ارث نمی‌بره علت چیست چون عمو فرض تعیین شده‌ای نداشت والمال کل كل، والمال كله للعم دون العمه و مال همهش مال عم عمو نعم و اما العصبه ما غیره پس تا اینجا حالات عصب بغیر بیان شدند که چار نفر از زنان بودن که بیان شدن اما العصبت و معغیره اما عصب معغیر فكل اونسا تصير عصبتن مع اونسا اخران عصب معغیر باز هم همشون زن هستن در عصب معغیر مرد نداریم همانطور که در عصبه غیر مردی وجود نداشت میگه فکل و اونسا هر زنی که تصیر و عصبتن عصبه بگردد مع اونسا اخرى با زن دیگه یعنی زنی سبب, سبب بشود که اون عصبه بگرده و اینا هم فقط خواهران هستند فقط عصبه معغیر خواهران هستند حالا چه خاهرانه پدری مادری یا همون شقیقه چه خواهران پدری دیگه عصب مغیر ما دیگه ای که از ذوال ارحم باشند نداریم کل اخت خودش مثالی زده معلبنت لما ذکرنا مانند خواهر همراه دختر شخصی فوت کرد یک دختر داشت و یک خواهر حالا چون خواهر شقیقه باشد چه پدری فرقی ندارد دختر یک دومش رو میبرد ولی خواهر رو اسبه میگرداند شخص فوت کرده است یک دختر دارد با یک خواهر شقیقه دختر یک دوم رو میبرد باقیمانده مال مال خواهر شقیقه این هم از بحث اسببه غیر و عصبه ما غیر ان شاء الله اسباتی رو که از نسبی هستند در درس بعدی توضیح خواهیم داد